بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی موضوع سخنرانی امامت جلسه هجده هم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمون و صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا و شفیع دنوبنا و عزقاسم محمد و و الله علیه قبلا از کبیم یک مالی در دست کسی به عنوان امانت باشد اگر این نگهداری کند و کوتاهی در حفظش نکند رسو حسابی اونجوری که مال خودش رو حفظ میکنه حفظ کنه و تعدی و تفرید در این مال نکنه اگر اتفاقاً تلف شد ایزامی نیست اگر مالی در دست انسان به عنوان امانت باشد. ولی یک وقت امانت امانت مالکی که مالک امانت گذاشته پیش انسان. یک وقت امانت امانت شرعی در هر دو صورت چه مالک امانت گذاشته باشد چه به دستور شرع این ام مال امانت پیش انسان باشد اگر این مال رو نگهداری کند تعدی و تفرید درش نکنه اون مال اگر تلف شد ایزامه نیست و اما اگر تعدی و تفرید کنن ایزامه مواردی رو قبلا ارز کردیم به عنوان امانت مالکی که مالک امانت میذاره یه مالی رو میاره پیش انسان صاحب مال میگه این باشه پیش تو یرا امانت برای من نگهدار تا بعدا بیامازد بگیرم این اصلا عقدش بقول ها عقد ودیعه و امانت است این مالک این مال رو پیشه ای گذاشته است این باید در نگهداری ای کوتاهی نکند اگه این مال امانته معنیش است که این یجایی نگهدار و محفوظ بدار تا بعدا بیامازد بگیرم اگر تصرفی در این مال بکنه این میشه زامن این یادش از ید امانت بیرون میره میشه قاسب اگه تلف بشه زامن فرد مثلا از میکنم یه دست اسکناس ده تومنی تا اسکناس ده تومنی به من داده میگه اینو نگه دار تا من برگردم من نیه پولی لازم دارم مثلا فرد بفرمایی یزار تومن میخوام یزار تومنی خود کنم این پولوین میدنم به جای او حق ندارم این کار رو بکنم من یه یقین داشته باشم که صاحبش راضی و اما اگر نه احتمال میدم که این همه اینو میخواد احتمال میدم راضی نباشه حق ندارم که عوضش کنم اگه یه عبایی گذاشته پیش من امانت حق ندارم که گوش کنم اگر یه کتابی گذاشته پیش من امانت حق ندارم مطالعه کنم تصرف کنم این باید نگه دارم و باید نگهداری کنم و حفظ کنم و تصرف نکنم اگه اتفاقا تلف شد زامن نیست این این به عنوان امانت <تصفح> یه مالک چیزی رو به عنوان آریه به انسان میده آریه معناش اینه که انسان میده کسی از یک کسی چیز میگیره که از این چیز استفاده کنه مهمون براشون آمده ارز کردم دیگر لازم داره میره دی از خونه همسایه میگیره فرض بفرمید کاسه کم داره میره کاسه میگیره این میگیره نمیاره بذاره خونه این میگیره برای اینکه که بیاد ازش استفاده کنه ای این نداره اون مقداری که شرعن و عرفن جایز استفاده کردن عزی استفاده میکنه و اگر تعدی و تفریط نکنه کوتاهی در نگهداری این جنس نکنه و حفظش کنه اگر اتفاقا تلف شد زامن نیست و همچنین از که این موارد اجاره اگر کسی رو اجیر میکنن برای کاری خیاط رو اجیر میکنن که این لباس رو بدوزه که مثلا فرید برن کسی رو لباس میدن که بشوره و امثال جالی اینو باید حفظش کنه اگر اتفاقا تلف شد ضامن نیست ما مواردش رو قبلا شمردیم که اینا از میشد امانت مالکی است که مالک امانت میزاره اما یه مواردم امانت شرعی است که به دستور شاره مالی پیش کسی امانت است او هم حکمش همینه اگر کسی چیزی رو تو کوچه پیدا بکنه این مال در دسته ای به حکم شارع امانته این باید نگهداریش کنه تا یک سال بگرده صاحبش رو پیدا کنه ولی این رو باید دقت کنه در حفظش باید در یک جای مناسبی که اگر پول جای مناسب پول تو سندوقه اگر لباس جای مناسب لباس توی یک گنجهی، صندوقی، است خلاصه هر چیزی رو جای مناسبش رو باید بذاره و حفظش کنه و کوتاهی نکنه مال پیدا شده داخل در امانت شرعی اگر کسی کفش اشتباهی پوشید کفش اشتباهی داخل در امانت شرعیه رفت کنهشون دید کفش عوضی پوشیده اونم همینه این مال رو باید نگهداری کنه تا به صاحبش برسونه این مال رو مالک امانت به این نداده ولی حالا که اشتباه کرده و سهر کرده شارع دستور داده که این رو نگهدار و این مال در دست تو امانت است تا به صاحبش برسونه این دیگه حق نداره بپوشه بعد از این که متوجه شد که مال مردمه حق نداره بپوشه دیگه اینو باید نگه داره دقت کنه و بگرده و صاحبشو پیدا کنه اگر به پوشه میشه زامن یعنی اگر اتفاقا پوشید و رفع جایی و این کفش گم شد این زامنه پولشو باید به صاحبش بده بنابراین مالی که کفشی که عوضی این انسان میپوشه مالی را که از دست کسی میگیره ولی بعد هم معلوم میشه مال دزدیه. یه فرش از, از خریده بعدا مسلم میشه که این فرش دزدی بوده در این صورت باید نگرش داره تا به صاحبش برسونه این مال در دستی امانت هست ولی امانت به دستور شاره و به حکم شارع نه اینکه مالکش امانت گذاشته مالکش امانت نذاشته اون دوزه رفته مال مردم دوزیده و فروخته ولی این فهمی که حالای دزدیه این باید نگه به دستور شاره. اگر نداره که ای رو در معرض فروش در بیاره بگی من خریدم مال مردم به خود خریدی برو پول تو دوزار پیدا کن پولش ازش بگیر پول تو ازش بگیر اما این فرشو حق نداره بفروشه این فرش باید میگه داره به صاحبش برسونه تحقیق کنه بگرده صاحبش رو پیدا کنه و بعد از اینکه صاحبش پیدا شد فرشو بده به صاحبش چون تو دعا بعدم بره بگرده اگه گیر برد دوزار رو پیدا کنه پولشو بگیره ازش اگر گیر نایو کسه بخوره این محفه مال شمال مردمه خود خریدی خب نمیدونستی خریدی خیلی خب نمیدونستی آدم خوبی هستی جهنم نمیدارانه فقط اگه نمیدونستی خریدی که جهنم باید بری ولی حالا که نمیدانستی و خریدی جهنم دیگه نداره گناه نکردین ولی مال مردم مال تو میشه چون نمیدونستم خریدم پس این مال ما نه مال تو نمیشه این باید دو ولی نگهداری کنی و بگردی صاحبش رو پیدا کنی و به صاحبش بعد از که یادم کردی رد کنی و اگر از میشه صاحبش پیدا شد و مال رو رد کردی پولت رو با از درزه بگیری از صاحب این فرش نمیتونی بگیری عیناً اگر کسی چیزی رو از یک بچه بیگیره اون وقتی که میگرفت متوجه نبود این بچه هست بعد از که گرفت فهمید این بچه است. این صغیره این دیگه حب نداره این مال رو به دست خود این بچه هستا بده این باید بره بگرده صحابش رو کنه ولی این بچه کی بوده این مال رو بده به دست ولی اون بچه اگه بده به دست خود این بچه این بچه ببره این طرف ازش بگیرن یا بیفته و تلف بشه ای آمینه که این مال رو گرفته از دسته ای. این حق نداره دیگه این رو رد کند به دست این بچه ولی این بچه رو پیدا کنه و این مال رو به دست ولی یه بچه برسانه منابرای این مسئله کلی ما ای. هر مالی که از طرف مالک پیش انسان امانت هست هر مالی که از طرف شارع پیش انسان امانت است. اگر تعدی و تفریت نکند و کوتاهی در حفظش نکند و زیاده روی در استفاده از او نکند یه جاهایی هستن حق استفاده نداره مثل همون ودیعه که عرض کردیم آعز می پیشی امانت میذاره اصلا حق استفاده نداره یه حق استفاده داره ولی محبی یه کسی مثلا ماشینش رو به من اجاره میده که سوار بشم حالا من تو فردانی خرزه بار کنم این حق ندارم این کار رو بکنم سوار میشم به اونجوری که متعارف معموله سوار بشم اون نداره و با این بار بخوام ببرم اون تعدی کردم اگر با یه ماشین باری ماشین رو اجاره کردم که بار ببرم معمولا با این ماشین مثلا فرض ببرمید اگر فرض مثلا از میکنم وانته من که بلا نیستم فرض میکنیم با این وانت دو خواب بار میشه حمل کرد اگر سه بار حمل کنیم زیاد روی کردی زامنی نه زامنی که معنیش نیست که فقط اجاره این بار زیادی رو باید بدی ای که باید بدیت من نه فقط این نیست یعنی اگه این ماشین بشکنه یعنی خسارتش مربوطه به توست نه بشکنه بر این اینکه زیاد بردی روشان نه اون که مسلمه باید بدی نه حالا بارای بردی به منزلم رسوندی بارا هم خالی کردی ولی حالا اتفاقا داشتیم مومدی شکست ماشین خالی هم بود ولی رامنی چون این تو دیگه به واسطه اون و تفرید از ید امانت خارج شد شدی قاسب قاسب یدش امانت نیست بلکه ید قاسب ید زمانه هر نقصانی به مال غصبی که وارد بشه این شخص قاسب زامنه پس بنابراین مال امانت را اگر تعدی نکرده و تفرید و کوتاهی در نگهداریش نکرده اگر اتفاقا تلف شد زامن نیست ولی اگر تعدی و تفریط کرده باشد زامن سلام آرومان